موضوع این هفته پادکست خودمونی حق و حقوق زنان در جامعه ایران هست یک برنامه خیلی خوب براتون تدارک دیدم پس تا آخرش همراه باشید خب اگر اخبار رو در هفته گذشته دنبال کرده باشید حتما متوجه شدید که خانم نیلوفر اردلان که یکی از فوتبالیست های تیم ملی زنان کشور اون ایران هست به علت مخالفت شوهرش از همراهی با تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در بازی های قهرمانی آسیا محروم شده این اولین بار هست که تیم ملی ایران با مسابقات قهرمانی آسیا میره و یکی از بازیکنان مطرح تیم فوتبال زنان ما هستن و در واقع یک فرصت تلایی بوده برای نشون دادن فوتبال زنان ایران در عرصه آسیا یک فرصت خیلی تلایی بوده برای خود این خانم برای اینکه توانایی‌های فردیشو نشون بده ولی خب محروم شده شوهرش مخالفت کرده همونطور که می‌دونید اجازه خروج از کشور در ایران اجازه خروج از کشور برای زنان دست شوهرشون هست و شوهر ایشون مخالفت کرده دلیل مخالفتش هم این بوده که گفته فصل روی مسابقات با فصل شروع مدارس یکی هست و ایشون با عنوان یک مادر وظیفه داره که در کنار فرزندش بمونه و به تحصیل فرزندش برسه و چون فرزندش بهش بیشتر از کشورش نیاز داره خب در مورد موضوع این هفته من چند تا انجام دادم با چند تا از جوان که یه داشتون ساکن ایران هستن و یه داشتون ساکن ایران نیستن که نظرشون رو در مورد اتفاقی که افتاده بدونم اما قبل از که من اون مسابقه ها رو برای شما پخش بکنم و نظر اون جوون ها رو برای شما بذارم یه چیزی رو من به ذهنم رسید من هر ها که اکس های این خانم رو میدم می یا عکس تیم فوتبال زنان ایران رو میذیدم یعنی واقعا به اون لباس هایی که بازی میکنن که اصلا شبیه لباس فوتبال نیست انگار که یک نفرو کردن توی یه گونی و الان در دنبال توپ میگرده واقعا همین که به این مسابقات رسیدن و تا اینجا موفق بودن خیلی کار بزرگی کردن و من فکر می کنم این بازیکن وقتی که یکی از بازیکنان خیلی گذار ما هست حالا بیایم مثال بزنیم در تیم مردها چون من فکر نمی‌کنم اکثریت جامعه ما آشنایی چندان رو با تیم فوتبال زنان داشته باشن خود من هم تا اون ها آشنایی ندارم و شاید مثل خیلی از شما دور دور اخبار اونها رو فقط میتونیم بخونیم چون بازی ها رو که ما نمیتونیم ببینیم پخش هم نمیشه و اطلاعاتمون خیلی محدود هست ولی حالا بیایم مثال بزنیم این خانم مثلا یه کسی هست مثل اشکان دژاگه مثل آندرانیک تیموریان مثلا تع آزمون برای تیم ملی آقایم. واقعا وقتی که همچین مهره ای هست و تیم ملی بهش نیاز داره و میتونه اونجا مقام بیاره خیلی حیف هست که این موقعیت رو از دست داده. مسئلهی که حالا بعد از اینکه این خبر منتشر شد در شبکه اجتماعی و کاربران ایرانی خیلی مسائلی رو که صحبت میکرند در انوادش خب یکی مسئله مردسالاری بود اینکه قوانین مملکت ما که نشد گرفته از قوانین اسلامی هم هست خب مردسالاران هست و برای همین همین خانم خب نتونست. تیم کشورش رو همراهی کنه و اگر این اتفاق برای یک آقا می افتاد هیچ وقت خانمش نمیتونه از اون محروم کنه و بگه آقا شما بچه تون میره مدرسه بچه به پدر هم خب البته نیاز داره شما حق نداری بری و فوتبال بازی کنی بشین کنار فرزندت و براش پدری بکن هیچ وقت همچین اتفاقی رخ نمیده ولی بخاطر خاطر اینکه جامعه ما یه جامعه مردسالار هست مثل خیلی از جوامع دیگه این رو باید اینجا اشاره کنیم که نه خودزنی بکنید و بگیم وای ایران بدترین جای دنیاست نه خیلی از کشورهای دیگه قوانین مردسالارانه دارن یه گزارشی رو من داشتم میخوندم در سایت پیور ریسرچ که این داش میگفت که 27 تا کشور هستن برای مثال که وقتی که زنی که شهروند اون کشور هست ازدواج بکنه با یک مردی که شهروند اون کشور نیست تابعیت به اون مرد تعلق نمیگیره میدونه که در خیلی از کشورهای دنیا تابعیت از طریق ازدواج منتقل میشه ولی 27 تا کشور هست که خب زن رو لایق این قانون نمیدونن خبر دیگه رو من داشتم می‌خوندم که حدود فکر می‌کنم 15 تا 20 تا کشور بود نوشته بود که زنها در این کشورها برای کار کردن به اجازه شوهرشون نیاز دارن نوشته برای مثلا من میخونم از روی اون مقاله بیشتر محدودیت های گسترده در مورد استخدام زنان در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی مشاهده می شود. خب همونطور که می دیدین اروپای شرقی و اروپای شرقی کشورهای مسلمان که نیستن که اونجا. این مشکل فقط مخصوص کشورهایی که قوانین اسلامی دارن نیست در اروپا هست، در آمریکا هست. توی اون مقاله رو من برای شما بخونم. اومده بود که همچنین به عنوان مثال اطلاق عنوان رئیس خانه به شوهر از قوانین مدنی فرانسه در سال 19 ه میلادی هست شد اما در برخی قوانین کشورهای قرب آفریقا این عنوان همچنان وجود دارد. در روسیه نیز زنان اجازه انجام 459 شغل از جمله رانندگی با ماشین های کشاورزی را ندارند که بیشتر این قوانین از دوره اتحاد جماهیر شوروی به این عصر منتقل شده است. حتی در آمریکا تحقیقاتی که انجام دادن زنها برای کار برابر ساعت کاری برابر، وگو کمتری رو برای همون کار همون ساعت کاری نسبت به مردها دریافت میکنن در واقع اون چیزی که میخوام بگم متاسفانه این تبعیض ها علیه زنان در اکثر کشورهای دنیا چه کشورهای مسلمان چه کشورهای غیر مسلمان چه در آسیا چه در آمریکا چه در اروپا متاسفانه وجود داره و به نظر میاد که یک اقدام جمعی و بینالمللی و همگانی لازمه تا این تبعیض ها از بین بره. و ما نمیتونیم یک نفع انگشت اتحام رو به سوی یک فرد یک فرهنگ خاص یا یک کشور خاص یا یک دین خاص اشاره بکنیم و اونها رو محکوم بکنیم این راه چارش نیست و در واقع همه کسانی که در این دنیا زندگی دارن میکنن بر روی کره زمین دارن زندگی میکنن باید دست به دست هم بدن و برای برطرف کردن این ها کار رو انجام بدن خب من بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. بریم و شنونده نظرات دیگر دوستانمون در مورد این موضوع در مورد اینکه خانم اردلان هستیم ملی هست شده در مورد تبعیض علیه زنان و در مورد فرهنگی که باعث به وجود اومدن این تبعیض ها میشه باشه بریم معتقدم محرومیت خانم اردالان از همراهی تیم ملی بیشتر از جنبه های شخصیش مونه و در واقع حق حقوق ملی ما پایمال شده بشنوید حاله را که در این مورد صحبت میکنه در مورد حسب نیگفر اردالان از تیم ملی واقعا متاسفم از این که یه حق ملیمون پایی مال شده ولی خب از طرفی هم نمیخوام یک طرفه به قاضی برم و غذاوت کنم به هر حال است که متاسفانه افتاده مریم هم نظر خودش رو به این صورت در مورد محرومیت خانم اردالان از تیم ملی اشاره میکنه و نکته مثبتی که مریم اشاره میکنه این هست که خانم اردالان این موضوع رو رسانهی میکنه و باعث اطلاع رسانی به بخش دیگه ای از جامعه میشه و باعث میشه که این موضوع نش پیدا بکنه قبل از هر چیز باید مراتب تاسف خودم رو از این اتفاق ابراز کنم به عنوان یک زن ایرانی که از حق انسانی خودش برای رشد و پیشرفت محروم شده اتفاقی که نه تنها غرور ملی ما را خدشه‌دار کرد بلکه یک بار دیگر به ما یادآور شد که جایگاه زن در قوانین کشور ما به چه صورتی است با همه اینها من فهم می کنم همه این حزینه هایی که این جریان داشت همه این ضرر و خسارتی که به هویت ملی و غرور ملی ما خود، این اتفاق نکات مثبتی داشت چون با اقدام نیلوفر برای رسانه‌ای کردن این جریان همراه بود این جریان رسانی کردنش میتونه به مردم ما اینو یادآور بشه که سلب حقوق و آزادی یک انسان میتونه به حزینه یک ملت تموم بشه. در واقع صدای نیلوفر صدای همه زنانی هست که با همه استعداد و توانایی هایی که داشتند به خاطر قوانین این چنینی از که علمی و کاری محروم شدند و چون نیک بنگیم دودش به چشم یک ملت رفته. جینوس نظر جالبی داره و قابل تحمل البته جینوس معتقده که این محرومیت مستاق خوشونت خانگیه بشنوید نظر جینوس رو این اتفاق مستاق خوشونت خانگی علیه زنان بود و بسیار دردناک. چون به ما یادآور شد که به طور قط نیلوفر اردلان تنها زنی نیست که به دلیل مخالفت همسرش نمیتونه از کشور خارج بشه این اتفاق میتونه برای هر زن ایرانی رخ بده بنابراین لازم این قانون نه فقط برای زنان ورزشکار بلکه به طور کل به نفع برابری برای تمام زنان ساکن ایران تغییر پیدا کنه ساناز اشاره میکنه به موضوع تبعیض علیه زنان در کشورهای دیگه برای مثال اشاره میکنه که در تداری از کشورها زنها بدون اجازه شوهرشون حق کار هم ندارن بشنوید نظر ساناز رو به اذر من این موضوع نشون داد که حق زنان توی ایران چجوری نادیده گرفته میشه و زنها در از تصمیمگیرهای مهم راجع به زندگی شخصی خودشون هیچ نقشه ندارن البته بعد از این موضوع یک آماریا منتشر شد که حدوداً توی تا کشور جهان زنها بدون اجازه شوهرهاشون نمیتونن کار بکنن که این واقعا جای تلصفه سانات همینطور معتقده که زن و مرد باید با هم دیگه همکاری داشته باشن که هر دو بتونن پیشرفت بکنن. خب وظیفه مادری که شرایط مختلف میتونه بر خیلی چیزا ارجحیت داشته باشه اما خب یه پدر هم یه وظایفی داره و قرار نیست که مادرها فقط مسئول تربیت و پربرش بچه بچه‌ها باشن به تپ پدرها هم باید توی این شرایط به خانم ها و به مادرها کمک بکنن توی خانواده زن و مرد اگه با هم دیگه همکاری و تعاون داشته باشن و تقسیم وظایف بکنن به تپ پیشرفته شخصی هم میتونن داشته باشن. حالا معتقده که وظیفه مادری در اولویت قرار داره. اما اینکه این, این وظیفه چطور اجرا میشه مهمه و در واقع کیفیت اجرا شدن این وظیفه مادری به کمیتش برتری داره. من به شخصه 100 درصد وظیفه مادری رو در اولویت میدونم بعد اینکه ما از وظیفه مادری چیه مهمه یعنی حضور فیزیکی یک مادر حتی با روحیه شکست خورده و غمگین و با اون حال هوای اختلاف با همسرش در کنار کودک میتونه ادای وظیفه مادری باشه بعید میدونم آیا وقتش نرسیده که بروی روش های بهتری برای انجام این وظیفه فکر کنیم شاید میشد با خود کودک مشورت بشه آیا با کودک صحبت شده بود یا تو این مورد هم پدر به جای اون تصمیم گرفته بود چون من متقد نیستم که بچه ها توانایی درک رو ندارن اتفاقا اگر از عوان کودکی خیلی از مفاهیم براشون تعریف بشه شاید حتی این کودک در اون لحظه در لحظه شروع مدرسه و نابود مادرش میتونست احساس افتخار بکنه از این که مادرش داره خدمتی رو مثلا به مملکت میکنه ژینوس و مریم به نوعی به یک موضوع اشاره میکنن ژینوس معتقده که تعریف ما ایرانی ها از زن خوب یه تعریف مردسالاریه و ریشه در ذهنیت مردسالار مردهای ایرانی داره از اون طرف مریم معتقده که این اولویت مادری رو از بچگی در ذهن دختربچه‌های ایرانی میکنن و در واقع به انسانیت اونها و به شخصیت اونها کمتر اهمیت داده میشه و فقط میخوان بچه دخترها رو طوری بار بیان که یک مادر خوب یک همسر خوب باشن و حق انسانیشون و جنبه انسانی و شخصی اونها نادیده گرفته میشه من فکر می‌کنم اساساً تعریف ما ایرانی ها از زن خوب که در اون جوانی ازدواج می کنه، به زودی باردار میشه، خودش رو وقف نگهداری از بچه ها و رسیدگی به امور خانه میکنه و هرگز هم خم به ابرو نمیاره، ساختار محض مردانه داره. هرچند بانوی ایرانی این تعریف از زن رو باور کرده باشه، بنابراین از اصل این دوگانه رو باور ندارم. همونطور که مرد میتونه پدر باشه و کار کنه، زن هم میتونه همزمان مادر باشه. استاد دانشگاه باشه، فعال اجتماعی باشه، ورزشکار باشه یا یک محسس یکی از چالش های مهم حقوق زنان در ایران همین بحث اولویت مادری و همسری بر سایر امور هست در واقع انسان در واقع زنها انسان متولد نمیشن بلکه مادر و همسر متولد میشن و در تمام دوران کودکی و نوجوانی آماده پذیرش نقشهای مادری و همسری میشن و همین هم سرمنشه تبریزهای فراوانی برای زنان بوده و هست به طوری که همه جا از نقش خطیر مادری و همسری صحبت میشه اما هیچ کجا از حقوق انسانی نفراد بحثی نمیشه دو فر هم متقده که وظیفه مادری میار ثابت و مشخصی نداره و با طرز فکر افراد، طرز زندگی افراد و فرهنگ افراد البته این تعریف ممکنه که تغییر بکنه حالا سوهرش گفته که بچه از در این وزیفه مادریش ایجاب میکنه که بمونه رفت میکنم وزیفه مادری یه چیز ثابت نیست که حالا تو یه میگاه ثابت وزیفه مادری این و این و این هر کسی به تناسب و سرایطش و موقعیه کش و طرز و تفکرش و در که برای دانده که انتخاب سرمیسون انتخاب کنه وزیفه مادریش چی ایجاب میکنه اینکه یکی بیاد که رو ن بعد خب کاری به خاطر اینکه اون فصل میکنه که وقتی فرماری اینجای کنه، به اونی که دست هست نامشون کام که خیلی درام تریه و نادرانه. خب داماد اینکه این مشکل از کجا هست؟ آیا از فرهنگ ایرانیه؟ آیا ریشه در فرهنگ اسلامی داره؟ و مقصر کدوم هست؟ و مشکل این در واقع ریشه این مشکل در کجا هست؟ خب ساناز معتقده که فرهنگ ایرانی ما از فرهنگ اسلامی قطعا تاثیر گرفته و ما برای از بین بردن این مشکل باید فرهنگ سازی بکنیم. حال معتقده که این البته یک چالش فرهنگی ولی مقصر اصلی مذهب نیست و مرد رو فرهنگ مرد رو مقصر اصلی این جریان میدونه. من به شخص نمیتونم زیاد فرهنگ ایرانی اسلامی رو جدا کنم چون فرهنگ ما خیلی تاثیر گرفته از فرهنگ اسلامیه ولی به طور کلی فرهنگی که بر جامعه ما حاکمه یه فرهنگ مرد سالاره. قوانینی که ما داریم زایه شدن حقوق زنان رو قانونی میکنه و به این مرد که توی جامعه حکم فرماز دامن میزنن را حل هاشتن فیم میکنم که میتونم تغییر و اصلاح قوانین زد زن باشه و یه مورد دیگه هم که به ذهنم میرسه اینه که فرهنگسازی برای پذیرش حقوق برابر زن و همیت دادن به توانایی هاشون و جدی گرفتن دستاورداشون میتونه باشه که این فرهنگسازی میتونه توی مدارس اونواده ها در تربیت فرزندان و همچنین رسانه های عمومی میتونه صورت بگیره این یه چالش فرهنگیه. البته میتونه فرهنگ مذهبی هم به کمکش بیاد، ولی به نظرم این نوع نگرش و حرکت مردونه ممکنه به راحتی حتی در هایی با دین غیر از اسلام هم رخ بده یا حتی در هایی که کلن مذهب برشون حاکم نیست. این ریشه در تفکر کاهن بشری یعنی مرسالاری داره. در فهم اشتباه از خیلی از مفاهیم مثل زندگی مشترک، تربیت کودک، این دوگانگی کاذب بین کار و وظیفه مادری و خیلی واه هایی که باید برای ما دوباره تعریف بشه. و من امیدوارم و شرایت امروز فهم جدیدی از یه سری مفاهیم به دست بیاره که مطابق با زندگی جدید و امروزی باشه. جواب نیلوفر ای از جوابی که دیگران دادن برای من جالب تر بود و مطمئنم که شما هم شاید به این جواب فکر کرده باشید. نیلوفر معتقده که اگر این زن، تا الان به این و به این درجه از پیشرفت هم رسیده قطعاً حمایت های شوهرش در کار بوده من نمیخوام اون ذرا مسئله بگم که پشت هر مرد موفق یک زن محفقه را پشت هر زن موفق یک مرد موفقه. ولی نکته ای هست که ما باید بهش دقت بکنیم و در واقع شما فرض کن در یک خانواده اگر دارید زندگی میکنید زن و شوهر خب قطعا اگر زن به معافقیت های میرسه بدون حمایت ها و تشویخ های شوهر نبوده قطعا اگر شوهر به جای میرسه بدون حمایت ها و از خودگذشتگی های همسرش نبوده و این نظری که نیلو فرداد واقعا قابل فکر هست من خیلی شکرم بازه به این موضوع و که چیز رو باید در نظر بگیریم که اگر که حالا این بازی کن به اینجا هم درزه حفظا شوهرش سری همتاری رو باست داشته که به این مرحله رسیده این رو باید در نظر بگیریم حالا خود, خود اون خانوم خوش بکار استقامت داشته که حتما اینجایی و شوهر هم حتما کمک از کرده اینجا رو به نربان من خب یه پیش رسته چون قبلا دنها شاید به همینجا می می رسیدن ولی اگه بخوام خیلی امروزی و امسانی رو حسنگاه کنم میتونم بگیرم که نه خیلی نهاده دانه این قضیه حضرت ایران هم من فکر میکنم که هم ناسی از سرهنگ و هم سرهنگ ایرانیه چون سخت بزرگی از فرهنگ ما سخت تاثیر دینه و حفظ میکنم که تا اندازه. این اندازه روی این قضیه هبیز اثر گذاشته و برای از زن بردنش هم همیشت که تا حالا زیادی مستد به قبل خیلی جوها رسیدن خیلی شفتا داشتن با همه چیز تو ایم چیز خیلی تو باید چه چیزی پشت سایه فلوج گذاشتن ما فکرام همین فاکس میشه کم کم عرب کم بسه چون یه وقت به یه جای میری سی وقت یه مشه خیلی فرق میکنه این تو اینکه تو خونه است و خیلی سه استفاده هست تا بشه کار انجام دادن آره من فکر میکنم که بهترین راه برای اینکه تاویتا از من برین که زنان زیمقداری همت و پشت کارشون برای رسیدن به احلافشون بیشتر کن و قطعا مردان هم کمک کردن که زنان خیلی از احلاف ها درخشیدن اردلان در مسابقه که با روزنامه گل داشتن موضوع رو اینطوری توضیح دادن به نقل از روزنامه گل نوشتن که 28 شهریور زمان جشن ورود به کلاس اول پسرم است که می توانم در کنار او باشم تیم 29م پرواز دارد ضمن اینکه دوم و 3 مهر تعطیل است و بعد از آن تیم از مالزی برمیگردد بنابراین موضوع صرف فقط یک روز مدرسه رفتن رادان است خب این چیزی است که خانم اردلان گفته من نخوندم چیزی نظری که شوهر ایشون داده باشن در این مورد یا اعلام نظری کرده باشن من فکر میکنم ظلم خیلی بزرگی است که برای یک روز اجازه خروج از کشور رو به ایشون ندادن اجازه همراهی به تیم ملی از به ایشون ندادن من وقتی که نظر نیلوفر رو شنیدم یک مقاله رو در وبسایت مرد روز خوندم جالب بوده اسم مقاله این هست در دفاع از مرد ایرانی نوشته آقای محمد بابایی لینک این مقاله رو من میذارم در وبلاگم که شما بتونید برید و مقاله رو کامل بخونید آقای بابایی هم در ادامه و در خاتمه مقاله خودشون به یک همچین چیزی اشاره میکنه ایشون می در جامعه با قوانین مرد سالار اگر مساعدت و یاری سمیمانه شوهر نیلو نبود او به این راحتی نمی توانست هم بچه دار شود و هم در این سطح به فوتبال ادامه دهد خب دوستای عزیزم این بود برنامه امروز امیدوارم که خوشتون اومده باشه تا هفته دیگه موضوع دیگه و برنامه دیگه شاد و پیروز باشید